بعد تو من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المنصوبین و لحظ دائمه تعالی دائم اجمعین اللهم افیرنا جمیعا مشتعلین ارخمنا که یا ارخم الراحیم شد یک نهایت بحث یک جمع جوری از ادله بشه بعضی از نکاتی که که این تمام بشه استعراض عقل اولش اجماع بود در قدی از کلمات ما محمده یا استقلال سیره متشبه شد اجماع به مستقلن یعنی معنی فتحه های ها تا اوجهی که ما در دست داریم که حدود مثلا چهار قرن یا پنج قرن دادن تو این مسئله همشون فتحه به حرمت دادن این هست در لابلا اینها هم ادعای اجماع آمده، بعضی کلمات ادعای اجماع. تا که خوب اجماع مصطلحی که بخواد باشه و ربط پیدا بکنه به زمان خود اهل بیت و زمان نبوت صغرابو، ارتباط پیدا بکنه به مناسبت این سالانه ایم. این اصطلاحش مشکلیه، خالی از اشکال نیست. اون اشکال معروف دیگه اینه که این اجماع ظاهرا مردکیه نه از می‌دواید استفاده کنن چیز خاصی نیست نمیشه. اون نکته ای رو که در اجمال اصحاب ماست قبول بکن چون حرص شد کرارنه اصحاب ما اجمال رو یک کاشف از قول امام میدونن برای کاشف بودن باید این اجمال داره یک هایی باشه خسالتی باشه تا بتونه کاشف بشه. چه منقول میخواد باشه چه محسر باشه وقتی این ای مثلا چار قرد پنج قرد پیدا شده ادعای کشفش از قول امان مگر مثلا کسی تشرف خدمت امان پیدا کرده از بسیار بسیار مشکلی حالا غیر از اینکه اصولا اصلاً, اصلا اجماعات کاشف بزاکل معنا کلن مشکل دار غیر از اون در ما هم به مراتب اشکل خواهند این راجع به دعوای اجماع معمولا الان هم مشکلی اینجوریه که شما مدرکی رو حجت نمی‌دونن. بله، چون مخصلتش از همینا دیگه. سوال میشه چه که فرق می‌کنه همین اجماع اگر نمی‌دونستین مدرکش رو بگید حجت. اما حالا که میدانیم یه حجت نیست. علم من به دانستن که مدرک این اجماع چی هست، چه تأثیری داره؟ ما نوتش نمی‌دگه. میگم اجماع اتفاق علما به نحوی، ببین به نحوی که کرد. اگر مدرک نباشه، میگم اون نفع پیدا میشه. و بعد ایمیلا که در اجمالی که ما مدلکیشم ندریم شما بفرمایید که بود همون دیگه اجمالی که مدلکیش نمیدونیم این نحوی این کیفیت میاد یعنی اقوال فقها یک نحوی باشه که کش بتونیم اگر مدرک باشه باید باشه کشش کشش فقها بی نوا اون خصوصیت یعنی این اتفاق فقها باید به یک شکلی یا اسمش چی ما بتونیم به کیفیتی باشه مثلا فقه ها در ن اول مثلا صد صدوق اینها ادعا بکنن این فرق ممکن مثلا محق قرده بیلی ادها بکنه خیلی فهم کنه یعنی اجماع رو باید یک شکلی بهش بدیم اقوال باید به یک نحوی باشه دارای خصوصیتی باشه اون خصوصیت کشف میکنه بوله ما و اگر مدرکی باشه اون خصوصیت نیست اگر اجماع مال مثلا فوقای دیوی باشه اون خصوصیت نیست این بحثشون این نکته فندی مثلا هست این خصوصیت رو امبال مثال میخوام بگم مثلا ظاهری ها که اطباء داوود بن علی اصفهانی هستن که ایشون موعص مذهب ظاهری مثل اخباری ما به معنی میشه از اخباری مام تند در استظهار و تماثل زواهد اخبار ایشون میگه فقط اجماع صحابه حجت اینا قابل نیستن اجماع حجت مثل ما اجماع فی نفس حجت نمینه چرا چون میگه از اجماع صحابه مثل که رسول الله نکته رو کرد؟ اونا در اجماع صحابه فقط ما می‌تونیم کشف قول رسولان یا مثلا مالک میگه خصوص اجماع علم‌های مدینه شو می‌گه پیغمبر فرمونده که مدینه خوب و خوص و کارهای بد و افکار بد رو از خودش دور میکنه، پس ما به قول پیغمبر اعتماد این خصلت در خصوص مدینه است در کوفه نیست توی شام نیست توی پسره نیست توی قوم نیست دقیق اون نکته داره شیعه که گفتن اجماع گفتن نه باید به نکته ای باشه که کشف از قول امام بکنه مثلا از کم اجماع کاشف بین خیلی کم داریم یعنی مثلا اده از اجماعی نقل بشه مثلا شاید مباب مثال مباب مثال از بکنم به نظرم مورد سی مورد سی, مورد سی چیز کمتر بیشتر در کتاب معتع مالک ادعای اجماع علمای مدینه کرد. یا عجبه هم علمه ها یا اهل علم برده این یکی از مسادیر تصادفن اجماع کاشفه چون وقتی که مالک از فوقهای مدینه خبر میدار قطعاً امام صادق داخله من من دیدی زیادی از اجماعاتش نگاه کتابم نویشن شره هم برش نویشن نگاه کرده هم که چند موردش مخالفه ما باش مخالفه معذر میشه ما باش محافظه شاید مثلا جا دو سه درصدش مخالفه. معظم چون کل مسائلشون 300 تا چند تا سلات. از ازم کتابش هم ندارون، شماره شادم است. شاید چندی بیشتر نگاه کنم شمارهش واسه در از این که مواردی که ایشون ادعای اجماع کرده در کتاب معتع خودش خب به استثنای خیلی موارد نسبتاً کم فتاوای ما هم همونه. یعنی ما هم از امام صادق علیه السلام. در جاهایی که میاد که ما در نداریم. وقت میشه به اجماعات مالک عمل کردی یا نه؟ این مرد کلام اینه ما یقین داریم که به قول ماموساده حدیثتان آن انایت داشته؟ بله حدیثتان آن اون قدششون عمرشم مساعده با همه بعد از ماموساده را مفادش بعد از ماموساده را حد این جعفر محمد هم داره ایشون اعتماد میکنه قطعا این ماموساده جز فوقای مدینه بوده اینجای بحث نیست در از هم این بحث میدید شعه آمده همون بحث به شکل دیگری گفتن عده ای عددی ها، با یه خصوصی دیگه بیتونم کشم قول امام بود. مثلا گفتن اگر صدو و مرحوم کلینی و اون قدم ها گفتن بیتونیم کشم بینید اون شکل این کار شما به مدرک نباید داشته شما که هرام هست نه مید چون اگر مدرک آمده اون خصوصی فقط خب مدرک. هم چون اعتماد به اون خصوصیت که مثلاً خب بالاخره اون فقهای سابقا بدون مدرک اجماع نمی‌کردن. خب اگه یکی داشته ها احسن. چون فقهای سابقا مدرک نبوده مدرک هم که نیاد پس قول امام بوده. مم. مم. که اونها بسنه اونرا. پس اگه ی... یه یه روایتی ولی یه بحثی ولی اون که مثلا یه اشاره‌ای اشعاری داشته باشه میشه. روایتی باشه که در کتب ما باشه. خود دقت اصلا روایتی که هیچ کس از فقهای ما در هیچ کتاب ما هم نبوده اگر روایت در کتاب ما باشه باز میشه اجمال مدرکی بلا از قدم ها باشی بلا از قدم ها باشی فهمم کنن اجمال احتمال کافیه که ما ببینیم یعنی ما ببینیم عدد وقتی شما نه یک فقید عددی از فاباها اینه قبول کردن ارسال مرس... مسلمات کردن روایتی هم نداره به درد خور روایتی هم در بین نیست حتی ضعیفم میگن خب دیگه عادتا چون فقها که بی مذهب که پس این معنیش اینه که از امام غونارسی ما این مطلب دلی مطلب صحیح بود چرا این متاخرین فقط بس اجماع مذهبی مذهبی از اونجا ما هم اجماع رو قبول میکنه نه اینطوری نیست که مثلا اولا من قرار است اجماع بگی از کی متفقیون این اجماع مذهبی روی مبنای متأخرین اصحاب چون معناشون حدسه در نظر بکنید اول هم قدم ما هدهی که اصلا اهل اجماع نیزه مثل صدوق صدوق اجماع نمیگه شما کتاب فقیه نگاه کن. یک جا کلمه اجماع به کار نبره حالا مثلا کتاب فقیه سید موندزه در هر صحبه بار اجماع در این رو نهاده کنم چیخ توسی اجماع در اجماع چیخ تو خلاف تو خلاف چرا؟ چون موقع بوده اجماعش هم اجماع خیلی قوی نیست مثلا مثلا خمسه مثلا رعی امامیه لما این دیگه رعی کل امامیه که نیست این یه فبریکه مثل. ما قدمای اصحاب ما هم همینطور اینطور نبود که مثلا شما تویاد میکنیم مثل معروم استرزور تو امالی یک مجلسی داره هم لاعلی ناشیق ابو جعفر دین علی امامیه مثلا عده الان از علمای ما در مستمسکم هست عده جواهر هم داره زیاده این یکی زمورد هم یکی دین امامیه نه اجمال. اخه اجماع نیست. تعبیر اجماع فتاوی خودشه. در دیگه فق... نه تو کتاب امامیه اومده اشتباه نشه. فقیه نیامده. یکی از مجالس صدوق اینطوری هم نه شیخ ابو جعفر دین الامامیه امامی فقال دین الامامیه امامی کدا میگه اگر هر چیزی شیخ صدوق در این جورد اجماعین دعوای اجماع شده. دو نه چه دعوای فونه. صدوق تنها جایی که ازش اجماعی نه. اصلا صدوق اهل اجماع نیست. اهل این تعبیر نیست این تعبیری بوده که غالبا علمای کوف بغداد و مکتب بغداد به طور کلیه ماذل ولو مثل کلی ساکنه و این رو به اصطلاح مطرح کردن یک شرحی دارم من الان چوری میخوام جو بحث هشوام بشم اینه که میگن اگر ما روایت دیدیم نمیتونیم بگیم فقهای ما یک نکته خاصی بوده که از امام گرفته باشن اون نکته پیدا نمیشه در لذا اینا حرفشون اینه که اجما البته اجماع اده از علمای ما از قاعده لطف میدونستن منطقه را قاعده لطف با حساب که هم با عنوان تزمان یا دخولی میدونن مثل سید مرتضا که امام اون وقت اون باید شواهد دخول رو پیدا کرد موظم متاخری ما از قاده حدس میدونن کسانی که قاعده حدس میدونن میگن باید شواهد به حدی باشه تو اجماع که بزنیم قول امام و این از مبادی اصحاب ما داریم ما هم که اصولاً ایشون آرا بود جداً اصلا مساطیقش هم خیلی کمه چی این چیزی اصلا نمی‌زنیم اونی که تصور شده وجود نداره به هر حال این ما این بحث مفصلی کردیم الان اون به این صورتی که الان عرض کردم جاش اینجا نیست ما از همین کلمه اجماع رو تو روایات داریم الان اون خود اون روایات هم شرعی یه اجماعی هم در مثل مکتب بغداد داریم سالهای 400 400 و خورده یه 45 این اجماعیه تا زمانهای 700 داریم که علامه ادعا میکنه که نه اصلا مواردش هم فروندن اصلا اصحاب ما اومدن غزایا روشم یه رضای حقیقی باقوال بررسی کردن اینا غزای خارجی هستند اجماع در کلمات اصحاب ما یک نواخت نیست این اشتباه نشه هر جای یک جور مصرف شده اینا آمدن همه رو یک نواخت گیرن نه این نیست واقعاً هر جای یک جور. از زمان سلیمان زا یک جوره بعد, بعد از سلیمان مرزا تا بغداد تا مکتب مرهمه علامه یک جوره از بعد از علامه تا سال 10000 یک جوره بعد از علامت تا زمان ما دیگه شده، خیلی مخلوطه یک نواخ نیست خیلی قربانی شده و هم بیخیه مقداری. که توضیحاتش ما تو بحث اجماع از کردیم یک نواخ ما اجماع اصحاب رو حساب نمی کنیم اموالشون حساب می افراد رو حساب می کنیم در اون مسئله که ادعای اجماع شده حساب کردیم یه شرح طولانی داره که ان در وقت خودش اگر رسیم و با واسه وصول ان دوباره این را چه قسمت بحث پس انصافا اجماع مصطلح الان خیلی مشکله در ما لهنوی اما اگر اجماع رو زمین میکنیم با سیره واضحه بد نیست سیره نمیشه انکار کرد جای انکار نیست خصوصا که عسكر مثل یهودی ها هم سویل می هم ریش امام پیرنبر نه کردن از یهود یعنی به اعتبار سبیلشون مجوز هر رو میتراشتن از اونم نه نهی کردن به اعتبار هر دو که مثلا سبیل کوتاه بشه و ایش هم اعفاه بشه و برگشته به شواهدی که ما در روایات ما داریم روایات اهل سنت داریم تاریخ داریم شواهد تاریخی داریم بلکه در پاره ای از روایات ما نسبت داده شده به سنن ابراهیمه که بعد در غیر سوم عرض میکنند اون بحث است که ان شاء عرض خواهم پس یه بحث سیره سیره رو نمی‌شه این کار کردن انصافاً جای این کار نیست اگر هم کسی مثلا حتی ریشش رو کوتاه این روش محاسبه می‌کردن اصلاً خود کوتاه کردنش بحث داشتن که ادعا جایز نیست هیچ وجحت ابو ریش چون در حرمت می‌کنی؟ سیره لاعقلش حرمت حقه چرا حالا اون وجوب چه مقدار نه ما در حرمت حقه چرا دلیل دوم دو که بعضی دو دقیق قرار دادم مجموعه یا آیاتی هیست که یکیش عنوان تغییر دین اللهه که ما رو اینطور با هم گرفتیم نزی کردیم یکیش هم آیه انتبه ملت ابراهیم حنیفه که در اونجا در اون استدار بایه، تحنف مبنی بود بر بعضی از روایت که ما هم داریم اما سرنش روشد میزیم سیره میشه اثبات کرد بحث و سیره نوزدن ما تمامه اجماع به این معنا مکمل سیره سیر مکمل اجماع اینها شاهد بسیار قوی مطلب هستن بلکه میشه گفت که تنریمند یه ارسال مسلمات بوده بین اونها. حتی من در جای دیم که اولین که زید در سلاتین حلق لهیه کرد شعباس عباس صف خب خبرندم به این مطلب دهی یعنی راستو سالهای هزار دیت حتی, حتی سلاطین هم حلقله لحیه نمی کردن نسبت داده شده شا این کسیز که شاه عباس اولین کسی که حلقله لحیه کرد در سلاطین از اصل سیره یعنی مجموعه شواهد در اصل سیره در حرمت هر. حالا اون خصوصات بعدش کلام ما در اصل حرمت هر با مجموعه شواهدی که موجوده به نظر من جای خوب نیست حالا من یه توضیحات بعد چون تو مساله اما آیاتی که ذکر شده که آیه فدی غیرون خلق الله که توضیحات کافی داده شد که تغییر خلق الله عدم متعقنش که در روایاتان تغییر دین الله یعنی تغییر خرق نه من مخلوق خرق معنای اون روش طبیعت اون راهی که در طبیعت خدا قرار داده اون سننی که خداوند در راه طبیعی قرار داده که برای اساس او زیر بنام میشه برای دین لاده که دین القیم توضیحاتش گذشت و اما مجرد این که مثلا موی بدن آدم کم بکنه موی سرش کم بکنه درخت رو بگیره اصلاح بکنه بگیم اسمش تغییر خلق الله فرض کن جای جوبه آب نیست من جوبه آب بکنم چاه نیست چاه بکنم آب رو مثلا اینا تغییر خلق الله برای اینا بله برای این نیست اون ف... چون در اون در فطرتا لا, لا تبدیل فتر الناس علیه هم لا که دین اون نیست که این فطرت الهی است و تبدیل هم در اون نیست اونجا تبدیله در اینجا تغییر خلق الله است. تغییر خلق الله در این آیه مبارکه چون توضیحاتش کافی بودش دیگه تکرار اونو نسبت به شیطان به ایهاات شیطان قرار داده شده و لا آمورن نه من به اونها عمل می یعنی این تغییر خلق الله مجرد تغییر ظاهری نیست به عمر شیطانیست به شیطانی است. و ارز کردم از ظاهر آیه مبارکم در میاد که در این حال واقعی هم هست نه اینکه یک امر اعتباری و خیالی و مثل شعبده و چشم بندی نیست که انما خداوند متعال غیر از اینکه یک فطرت الهی قرار داده برای اشیاء و تبدیلی هم در این خلقت الهی نیست یک فرصت هایل هم در طبیعت قرار داده که نیروهای شریر، نیروهای خبیز، شیطین میتونه ایجاد خلل بکنه، واقعیه. مثلا مثلا چاغورو قله قرار کسی بود برای اینکه مثلا بش انسان منافعش بنزل نره حدیفه و از منافع ناز، الناس، لعنتی که واقعا با چاغو کسی رو بکشه. این فطرت نیست، این راه سعی نیست. اما این واقعی است. با چاغو کسی رو کشتن واقعی چشمندی نیست که واقعا هم کشه. چیزی ارشد کنم بخواین شبیهی نگاه بکنید مثل مثلا فرض کنید مثلا روی چاهای نفت یه چیزی میذارن که گازهایی که قابل استحصالی سوخته میشه از بن میره که اینا یه مقداری نیروهای در طبیعت هست که اینها قابل چیز نیستن قابل کنترل نیستن این نیروهایی که قابل کنترل نیستن اینا میان تاثیر میکنن اون راه صحیح رو خرابش میکنن فرض کنید مثلا همین مسئله که الان متعارف شده به اسم فارسی چی بشی میگن؟ استنساخ چی میگن؟ شبیه سازی، مسئله شبیه سازی خب این خلقت الهی و طریقیی که خداوند متعال خلق کرده این که هر موجود زنده یا حتی درخت از یک نراماده با مثلا یک زوج بست و زوجه از یک نراماده با تشکیل بشه از اون طرف مثلا این میاد با ایجاد یک چیزی که اسمش رو علم بذاشتن این، علم به این معنا هست یعنی این راه راه شیطانی است و اون اینکه مثلا یک سلول رو پرورش بدن بدون اینکه این که مسئله باشه باشیم این بحث خلق الله اینه و لذا این چون یک موجود الان در هر سرم کشور غربی هم اجازه میده این چون میگه این موجود جدیدی ایمانه بر فرض فرده انسان احساسات انسان داره عواطف انسان داره ادراکات انسانی داره غیرت داره شعور داره شعور اجتماعی این مثل این که بدن شما هیچش ورم بکنه. این, این ورم بدن هیچ فهم نمیکنه اینا فقط این ورم رو به شکل یه کرده کردن. با اون تختیب این در حقیقت اون موجود نیست. و اما اینکه فرض کنیم با مثال به جای اینکه گوجه فرنگی رو توی کار بکارن زیر خیمه میکارن از کرده این معلوم نیست تغییر خلق الله باشه. این تبدیل خلق الله باشه. آشتن مثلا سبزیجات در اونم هم معنی خیلی نافع باشه چون تازه شده هنوز بشر به مزارش پی نورده مونکنه بعد مزار بشن بدی داشته باشه نسل اصلا احتمال چون قوی یار من نیم کبارده تخصصی اون قسمت قسمت باشم نه وقتش هست و نه حالش هست و خصوصیتی که اینجا مدره ممکنه است که مثلا این میوه ها تدلیجا مخصوصا در درجه عوضی که توضیح اینه فقط اشایه ها باقره میکنم روی کبه تأثیرات بسیار بدی داشته باشه و انماع هیپاتیت های بیوسیر ایش که میگن که کلی نیستم و اون ممکنه که ایجاد امراض بسیار بد رو بعدها بکنم بشتران تجربه نگرده قره از نقض نشه فهمیم که کجا تبدیل خبر الله کجا تغییر خبر بر از این اثبات وقت، این رو چون فت به ملت ابراهیم و و حنیفیت آمده ما دیگه این دوتا آیه رو با هم جمع کردیم چون در روایات ما داره تبدیل خلق الله، فتح یوره ایرون خبر الله،, يلعی يلعی خبر الله ای دین الله این دین الله احتمال اشاره به اون آیه دیگه باشه و کداره که آقای این آیه کرده به ملت ابراهیم و حنیفن فطرتا لا حلطی فتران ناس علیه لا تبدیل لحلق الله لا, لا لکه دین القیم دین القیم من توضیح دادیم یعنی این زیر بنا و ملاک خنق الله این دین قیم میاد این فطرت رو قوام میده قیام میده یعنی کاری میکنه که این خودش این فطر و باز شدن که هر نمایی واقعیت های موجود هست این باید باز بشه و قوام این قیام پیدا بکنه نه اینکه مجردی این که باز بشه این دین قیمه اسم دین قیم اینه و اون تبدیل خلق الله این کارو میکنه اون فطرت الهی رو عوض میکنه دیگه دین قیم نیست خود دقت میکنه مثل همین شبیه سازی ممکنه ظاهرم بشر باشه اما این بشری نیست که دین قیم باشه دین قیم رو ایجاد میکنه. دیگه چون توضیحاتش سابقا گذشت تکرار میکنیم. کنیم، دو تا آیه گرفتن، ما به ذهن مشاهد یک آیه باشه چون یکی به یکی دیگه تفسیر شده، یک آیه باشه، وقت در این استدلال با مبارکه اولا تغییر خلق الله، ریشتراچیر صدق تغییر خلق الله بسیار مشکل این مشکل نیست. مضافاً برای تفسیرش به حنیفیت یک اشکال ای داره در روایاتی که با من حنیفیت آمده، پیش ما بیش اهل سنت توی تمام اونا ها تقریبا مثل قصد و شارب آمده حلق و لآنه تطهیب مثل اینکه میگن واجبی نوری کشیدن اونا آمده اما اعفا و در همش نیامده متاسفانه مشکل کار اون بسیله ایش که برده کرده اونجا نسخ مختلفه اصلا نسخ در این کتاب که هنیفیه دیگه حضرت ابراهی ماما چند تاست تو بعضیاش اعفا و لحیه هست و بعضیاش نیست مشکل. اون مشکلی که به نظرمنه هست اینه چون آهان ننوشته این راهی بود که ما رفتیم اون اعفاللهه لازم توی کتاب تفسیر علی ابن راهیم موجود ما هست اما مرسله و وضع روشنگ نداره این مشکل اینه در میان اهل سنت هم از آیشه که نقشه توی یکی هست اما در نقل های دیگه ای از حنیفیه توش نیست مثلا قصد و شارب تو همش هست اونجا توضیح دادیم که بعضیش ده تا از پنج تو در رست و پنج در جسد اون پنجتای در رست بعضیش توش اعفاب داره بعضیش به چیز دیگه داره پس مشکل این استدلال با آیات مبارکه ما تمسک به اطلاق تغییر خلق الله نمیتونیم بکنیم مگر جایی که حنیفیتش ثابت باشه که دین قیم باشه اعفاب اللهیه ثابت نشه این راجع به دلیل دوم که مجموعه آیات باشه این دیگه سهو مجموعه یه روایات روایات هم به توائفی استدلال شده هر هر موقع یه دلیلاودی یا مجموعه شده یکیش روایاتی که تشبه به کفار و اعداء الله اینهاست که اون هم جوابش گفته شده البته دیوژن نوکسی عسکری که شاید مراد لباسی باشه که الان ادوقن که انسان اگر پرشت پر تکون و تاکونو کم کما این روی این معنای دوم ما درسته اما ممکن است که نه مثلا لباسی که مسسیا پوشتن خاص مسیا ولی او فی نفس جایزه اما به خاص سیح ها شد شما هم بپوشید فردا ممکن شما مسیحی بچید تکون رو باید با آینده بزنید. اون معنی که کل دیروز تکون فعل میخورد به یت. اما به این معنی که میخوان ازش استفاده کنم با آینده باید. با این فقط بود که دیروز انصافاً این روشن نیست ماضفر مییم که مشکل صغربی هم اینها دارند. مثلا در زمان ما رو یشترشته. گر مود مسیحیت، مختلف. رو این زنده می‌شود. آموزه زردشته می‌شود. کمونیسم می‌گوید آه دیگه آنها متفاوت هستند. مسلمان چه آموزه می‌تواند؟ کار است که دیگه الان از اون چند بیه تشم‌باه لاتلبز و لاتوشگر مشارکت داره و مشارکت داره. این هم دیگه مشکل، دیگه هم مشکل انتباه و سرما می‌ادشه. به این که حدیث هم خیلی بیشمار روشن نبود. هم برای حدیث که ما بگیم هر مسیحی که هر لباسی پوشید و خاص مسیحی ها شد این مثلا حرام میشه به این عنوان ماشین های مخصوصی خاص مسیحی شد غذای مخصوصی، لیوان های مخصوصی بگیم بعد استعمال اون لیوان حرام به خاطر این رود. این صافش خیلی مشکله اثبات این مقدار؟ بله در بحث کرواد بحث مخصوصتیز اونجا بحث من سابقا نرمز کردم در حیاکل عباده بحث کرواد این نیست که چون مثلا مسیحی ها برخصوص بپوشن نه اون تشبه نیست بحث کرواد ادعا میکنن که کرواد رو اساسا از سلیبی که هسته بعد از اینکه از دارشون سلیب بردن پایین اون تنابی که به گردن حضرت آب زون بود شبیه این را اده از بزرگان مسیحی به گردنشون به نظر هم شاید اون یا رو کیه زاهد که جنگای سلیبی را انداخت نه وصاكه زده شو اونگه <تصفيق> <تصفيق> اونارو کش و داريو گدا هيمريو هاش اون کشيش زاهد من رو بفهم. ویلیوز، ویلیوز زاهد این رافتا جنگ مسیح به سرا جنگ رو رو را رو رفت از اروپا افتاد و آمد تا تا این همون طور کشته شد خیلی از این ارتشی کامندان عنوان نوست مسیح و صلیب رو با خودشون میگشتن کشا این... زنده اون تا وارد میتون بعد شده اون جنگ اول که وقتی هم خیلی شیعه هر چی مسلمان بود تو بذم معرض کشتن یک نفر بچه هم حال نمیکرد 100 درصد کشتن چون نیروها چیز کردن باهمی قرارداد نیروهای مسو بدن نیروهای مسلمان در اومدن ارتش مسلمان از بیت المقدس اهل وارد وارثشون مسیحی مازن نه یه عمرو مسلمان اون اسمش زاهد راهب زاهد میگن اونم داشته بهگردنش حالا من دقیقاً تو ذهنم نیست به حال راجع کراوات میگن رمزه مثل سلیم که رمزه نه اینکه حالا پیش مشهوره بحث این که رمز مثلا علوهیت هست موسا و عیسا مذهب و مذهب باطل یعنی که سلیم حکم سنم رو پیدا میکنه با اینکه که روزو چوب بده اون فضل روزو چون مشکل نداره که لیکن این چون رمز یک مذهب فاسده کروات غیر از حکم شما به تشبایه به لباس تیسا اشتباه نکنی کروات را اگر میگن حرامه چون میگن رمز سلیب کشیدن از تیساست که وقتی از تیسا از جنازش ما از دار بردن پایین چون میگن که ماشه اینشون را هم کشتشون که پایین را این نخ بگردن از دار آبزون بود شبیه این نخ آمدن این کروات ها را درست کردن الان خب ای اون بحث دیگر است که اگر یک مثل آب بعد مسلمان می‌زنم، توی دانشگاه شد رو آماده می‌کنی توی رو توی دانشگاه رو آماده می‌کنی توی دانشگاه شد رو آماده می‌کنی توی دانشگاه شد رو آماده می‌کنی توی دانشگاه شد این آماده می‌کنی توی دانشگاه شد رو آماده می‌کنی توی این درش شکل زندگی ما سلیم یه شکل رایج علامت زرد داره دیگه به اضافه است این مشکل نداره که قرض به هر حال اگر رمز شد ولو از موقعفلت او بشه اون مشکل داره مثلا خودش شطرنج ما احتمال داریم در شطرنج که شطرنج مشکل اساسیش این بوده که اون سوبن که هست شب من آشنایی خیلی ندارم این سوبن اصلان و بت‌های بوده که در هند بوده اون شکله که هست شکل بت ازا مشکل سر خودمون بازی نبوده مشکل سر اینکه یک نوع ترویج بطپرستی بوده چون این ربایت ما هم داریم اهل سنت هم ان امیرالمومنین مامنین دارن ما وزالین داریم اونا که حضرت دین اده نیشن از شفنش بعد اون رو به هم ریختن فهمدن ما آدهه تماثی لولتی انتونده ها از این معلوم میشه که این رمز بط بوده خود ساعتش هم از شیطان خ بعد بله حال این بعد شده چیز در است. اونی که در هد اساسا شد مجسمه های بوت های اونهاست. به هر حال یه وارد این بحث نشیم. این روایت رب... هم این یکی هم روایت تشبه رجال به نسا بود که ارز کردیم انصافا اگر دستش از تراشی این باشه و خدای نکه باشه حرامه لخی سرایتش به حقی لهی مهند کلامه که دیروز تو زیادش گذاره. یک مقدارم بود که در اعفا الهی ما داشتیم روایات اعفا الهی و در اعفا الهی باز توضیحاتش هم عرض کردیم مفصلا پیش ما متاسفانه به صد صحیح نداریم ما اصلا اعفالله ها رو ما نداریم لکن انصافا خیلی مشهور یعنی یکی از اون مواردی که انسان وسوقش پیدا میکنه فوق العاده مشهور این روایت در میان عهد سنت و اثانده متعدد داره پیش ما هم هست اما سند صحیح نداره خصوصا که در عده از روایات ما این تایفه بعدیه تصریح شده که اخذ از جایزه به مقدار قبضه مثلا زاده بر قبضه خوب نیست و اعلام مقدار قبضه جایزه یا از طرفین جایزه این روایاتی که میگه کوتاه کردن جایزه این کی واسه این باشه که افاعل الهی واجب باشه دیگه اون فرع اونه یعنی این راه هم ما رفتیم این فرع اون قسمته دو چطور بحث کوتاه کردم ها خب. اگر افاعل الهی نبود کوتاه کردن چیه اون وقت در بحث افاعل الهی این همون بحث است که امروز چی میگن هم موزیک میگن این بحث این اقاد ظهوری که از مشکلات کلامه چون این نقد شده که پیغمبر دو نفر که ریششون تراشیده بودن سمی گذاشتن حضرت فرمان عمرانی رحمی حالا من یه نقطه اینجا پنتز باز بکنم ممکن است اینطور بگیم این باید در زهل آیه عرض میکرم یادم رحم ممکن است اینطور اون که در روایات ما در حنیفیت که مثلا کوتاه کردن سبی جز حنیفیت و آن و حلق آن اینا احتمال داره که این دوایت مخواد میگه که پیغمبر من اینه اضافه کردم به سنت ابراهیم دقیق بکنم چون ما این رو داریم که مثلا حضرت ابراهیم یه کاره انجام دارن پیغمبر اضافه فرم دارن مثلا هست ابراهیم حدود حرم رو قرار داده. روایات داره پیغمبر اکنم مواقیت قرار دارن بعضی از مثلا سنت تواف جاهلین که توافیمان در حال تواف احرام می پوشیدن پیغمبر اکنم از خود میقات احرام قرار دارن احرام در بین جاهلین البته احرام به این معنا این لباس احرام، مثلا احرام به معنی شطر و مثل اشعار و تقدین ها از خونه هاشون انجام میدادن. پیغمبر لباس پوشتن احرام رو در وقت احرام سابقا هم توضیح دادم که اصلا در مکه عده‌ای بودن که کارش همین بود، چندین دست مثلا 100 تا 200 تا 300 تا دست لباس احرام داشتن، خیلی هم با اشعار ارتباط داشتن، اشیای ولی فلان که می اومد ازشون لباس احرام می‌گیم. تا خود پیغمبر داشتن تو خونه‌شون برای فیم کهذا نوشتن در تاریخ ضبط شده. اوننا که میاند لباس ااحامشون از پیغمبر چون می ما در این لباس ها گناار کردیم و گناه کردیم نمیشه احرام توف بکنیم. لباس رو میکردن برای همین له لباس اامهیم. این رو پیغمبر از خود میغات قرار داد نه دقت میکن این بوده که پیغمبر اکرم جمله از سن هست ابراهیم رو تطیم میکرد یعنی کامل کردند. لذا بعید نیست، آره این بین پرانتز داریم. ربی اشاره باشه که شاید معایر این باشه. ما هنوز سران است ابراهیم نبوده، لیکن فعلا اینه. حالا آره این پرانتز بسته. راجع به کلمه اعفاء اگر ما عرض کرده سابقا دیگه حالا نمیخوام تکرار بکنم، متونی که ما در اینجا داریم مختلفه. مشهورترش جزمن اعفائه. این از همش مشهورتر لكن متون دیگه هم داریم. لاف فرو هم داریم داری که زیاد باشه به اصطلاح عنوان دیگه که داریم عنوان وفرو داریم اوفو هم داریم اوفو الله ها لهیا رو وفا, از این کلمه وفا اصل کلمه وفا در لغت عرب اصلش معنی کامله اصل کلمه وفا دیگر همه وافینی کامله که توش خلقهش نباشه کامل نقره باشه یعنی که ریشه ریش حدی داره اون حدش رو انجام بدید بگذاریم به اون حد خودش برس و کلمه اعفالله ها که حالا امروز دیگه وقت نمی کنیم فرضا توضیح چین شده عرض میکنیم کلمه اعفالله ها ممکن است به دو معنا بیاد یکیش ناظر به این باشه که ریش ویل بکنیم ناظر به راها کردن ریش باشه یکیش ممکن است نازل باشه به با این که نتراشین دو تا میشه بنای بنایه من قادش ارزم که این خیلی قادره مفیدیه اگر در لسان دلیل لفظی لفظی بیاد حملش می کنم بر همون جالب اثباتی مثلا میگه اعفو یعنی که می کنید اما اگر حکم عقلی بیاد حملش می کنم بر جانب نفی منفی سلمی این یک نکته است که به ذهن ما در خیلی از موارد فرق کارگوش هاست این نکته خیلی لطیفه باید باید باید باید باید. الان میگم اعرض میکنم ببینید آهایان گفتن که شما شک کردین در قدرت اگر قدرت شرعی باشه اساطن برای جاری میشه اگر قدرت عقلی باشه اساطن اشتغال جاری میشه حالا این چه فرقی باید کنید در قدرت؟ فرقش اینه که اگر قدرت در لسان دلیل عقص شد مثل من تا اله سبیلا آمند تو لسان دلیل این میشه جنبه ایجابی یعنی باید احراز قدرت بشه یعنی باید ثابت بشه که شما قدرت دارید اگر شک بکنید که داری یا ندارین دیگه تکلیف برای نیست چون تکلیف معلق روی قدرته اما اگر قدرت عقلی بود مثلا گفت تیمم بکنیم فلم ما ماهن نداره که با قدرت فتیممون آب پیدا نکردیم اما شما شک کردین احتمال میدید بیرون آب باشه میگن اما اینجا فحص واجبه و قدرت قدرت عقلیست لذا اصارتال اشتغال جاری میشه اگر شکتون در این لذایی که از قواعد شده در اصول ما الان قاعده درستی هم هست اگر شک در قدرت قدرت شرعی باشه اساتون برای جوری میشه اگر شک در قدرت قدرت عقلی باشه اساتون اشتغال جوری میشه اون سرش هم تا اختلاف دارم اونی که بگم یک بچه که به ذهن خودمونه سرش اینه که در قدرت شرعی چون طول سان آمده امر وجودی میشه باید اون احراز بشه اما در قدرت عقلی مرجهش به محزوریت ازم ازده عقل نمیاد میگه تو باید قادر باشی این چیز چیزی رو نمیاد میگه تو اگر عاجز شدی این تکلیف نداری ببینید دقت کنید نزا بشی جنبه سلبی به که بشه جنبه ایجابی میشه جنبه سلبی مثلا شما الان میگه اینجا آب نداره بیرون میگه همین که احتمال میدی بیرون آب هست برو نگاه بکن اگر مطمئن شدی آب نیست عاجز شدی فلم تجدو فلان ما الفت اگر قدرت برای آب نبود پس تا شما مثلا نفقه, نفقه؟ من شک میکنم که آیا این کافیت با درم فرص بکنم با درم کار بکنم تا جایی که دیگه نتوانم برسم به حد عکس دیگه اونجا نفقه قدرت در با ما نفقه قدرت عقلیه او سونم به طور کلی در هر مورده که قدرت در لسان دلیل عقص نشه عقلیه عقص میشه شرقی به کلی عاده کلی که هست اینه افایل هم میشه شبیه همین معنا کرد بگی مراد حضرت از افایل یه ول کردنه در میشه شبیه جانب ایجابی بگی به قرینه این که صحبت با اون شخصی بوده که میشه تراشیده بوده ما ول میکنیم یعنی تراشیم نه که ول میکنیم این هم که بعد فوقهای مسلمان گیر کردن که اعف الله های یعنی ول میکنی چقدر بشه. بعد اصلا بشه معروف به طارق بن خیلی گنده ای که اصلا نظر داشت از کمنی کییدم که واقعا خدام تعجب واقع از نافشان نظر بیشتر بود من که سبب خیلی واقعا تعجبوار شجاونری بود نظر از اول جوونیش نگراشیدم انگار یک چیز خیلی غیر طبیعی در میاد من فکر می کنم از این که فقهای معروف اهل سنت هم yeah. یا صحابه هم مثلا عبد الله بن مسعود نوشتن کان یوسقره را نهیته یا عبد الله بن نوشتن به این که قبزه حساب میکن زائد بر قبزه این قبزه به ابو خوری نسبت دادن که ابو خوری زائد بر قبزه من به نظرم میاد اونا هم همینو فهمیدن اون معنای سلبی بیشتر به استلابن در ذهنشون بوده که نتراشن. نه تراشن نه اینکه که اون دراز کردن ایشور کردن اون با شواهد موجود از صحابه ارز کردم از صحابه که الان نقل ازشون داریم یکی عبدالله ابن مسعوده، یکی عبدالله ابن عمره که اون مقدار قبضه است عبدالله ابن مسعود نوشن چقدر، فقط نوشن کانی و سقه رو نهیده. یکی ابو حریره است، نقل قویلترش عبدالله ابن عمره اونم لحیه به مقدار قبضه ما هم در کتاب جعفری یاد از علی بن عبی طالب صحابه الله علیه در قدیم تاریم مستر که به صحابه برگردنیم اونا هم نقل نکرد از علی از عمره، ما داریم از اونم به مقدار قبضه اون اگر مراد اون اعفاب و اون معنا بود قاعدش اختضام میکرد که وی بکنن دیگه از این رو کتاب بکنه هم. لذا این احتمال به ذهن من چون این تقریب استدلال نه نرشتن یعنی ما حرفمون که کلام به لحاظ موارد مختلفش معنا پیدا میکنه سه فارسی که ما میگیم میگه گفت سیگار کشید میگه گفت تناب میشه میگه گفت پلو کشید قسران این کشیده اینجا بعد دیگه فهم میکنه یکی کیه اینه اینکه کلام این که حالا مذهبی بود در مذهبی ترکیبیش هم همینطوره چون طرف آماده رو کاملا تراشیده امام پیغمبر فن لکن امر علی ربی این شاید مؤید این باشه جزء سنن نبوی نبوده مؤید که توشن افعال لهینم امر ربی به اعفا اله ها ما این کار تا رو نمی این کار رو بوده این اعفا در مقابل هر وقتی ازش فهمیده میشه که حلق یه حرام بوده مثلا با کلمه عمرانی ربی این کار کار حرامی بوده اینه پیغمبر با این بیانشون بیان فقط گفته شده که این سال ششم هجریه اگر باشه سال هفته مالای شیشم در هفته هجری خیلی هم چیزهاییست که زود بوده از آن پیغمبر اکرم نصف غیر از مثلا هجه و کارهایی که در هجه تل ودا شده خلاصه بحث اینه که به ذهن ما میاد قویه یک روایت افاعله ها یا به این ای که ارز کردی ناظر به این با حرمت حلقه یا به قرینه روایت اخز من اللحیه که معلوم میشه که اصل حرمت حلق مسلم بوده یا به خاطر ملازمه غرفی آن این هم ندید بگیم عرفاً وقتی بگیم ریش رو بلند بکنید این کوتاگیری ترشیر چرا؟ تلازم، مثلا فهم عرفی تلازم میفهمه یعنی اون قدر متعقن برفرض هم بلند کردند، ریش واجب نباشه قدر متعقنش این میشه و قدر مفهوم و عرفیش به تلازم و عرفی حرمت حلق از اون در میاد و همین حرمت حلقم هم توی اهل سنت هم استفاده کردند، کردن. ارز به این هم که نسبت داده شده، عبارتش مشعر نیست. من ازش هم یک جایی در کتاب مذاهب رواه فرال مذاهب روندشی اتفاقات المذاهب دره. یک جاش به سه تا نسبت داده به شافی گفتی یکراه. حالا من نمیفهمم. اون جایی که اتفاقه، الان مراجعه نکردم تازه. اما دیدم خودم مراجعه کردم. اتفاقات المذاهب دره، الو حرمت حق لیه و اونام از همین روایت افول لاه فهمیدن. یعنی امده روابطی که اونها بلکه اونها اونا هم که اصلا مطلقا گذشته هم دیش واجبه کتا هم نیست که دیروز بساید کتا کردنه لذا به ذهن من با مجموعه این شواهدی که ارز کردیم به ذهن من که خیلی واضح میاد که تراشردیش حرامه حالا دیگه به منو داری که صدقی لحیه بکنه فردا منو دوردیم این لسان عرب لحیه رو بخونیم که این هم متاسفانه نشد نکنیم. علی ریزا این صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیره بر ما حیات چه مفاده ای اشكال واقع مشطرنج هم با این شکل موجودش بده اما خانه ها بود